و آله طایبین و خاهرین المعصومین و لحظ دائمت و حلاعدا این اللهم افرنا جمیعا مشتبلین و ارحمنا به که یا ارحم الراحمین هر مربوم مرهوم شیخ در اواخر بحث رشوه سه ترد و در اخلاف بین داخل و قابض مطرح سرمودن که نور محانه کلماتیشان یه مقدار از بعض قوائد و اصول و قوائد باقی قضاوت و هم متعرس شدید هر اول به تعبیر مرمون این بود که هر دو اتفاق دارن هبه بود فقط داقه کسی که پول داده میگه این هبه فاصله بود به خاصله رشن شدن خود قاضی که پول رو گرفته یه نه این هبه صحیحه درست حساب من داده مثلا ما با هم خامیدیم به خاطر رحمیت به من داده یا قصد و داره پس اصل به بودن روشن اختلاف در این که آیا صحیح هست یا فاسد این خلاصه یه پره علم از چا که مرمون شیخ قبلس الله و دو تا احتمال دادن این دو تا اول احتمال دادن, دادن بران تحقیق در احتمالشون فهمدن که حق با اون دافع باشدن به دو دلیل یکی که عرف به نیتشون اون پول داده و ایشون عرفتر به نیت خودش و دلیل دوم هم لعصالت زمان چون شک میکنیم که آیا اون قاضی زامن هست یا نه اولی میگه هده فاسد بوده من درشه دادم زامنه دومی میگه هده صحیح بوده زامن نیست اون وقت قاعده علیت اختزای زمان میکنه از آقا زمان مرافت قاعده عرلیت چون از قاعده عرلیت این طور مرومی میشه. هر طولی هر چیزی دست انسان برسه مالکش باشه زامنه تا اینکه به مالکش رد بکنه عرلیت ماه اخره حتی توعدیه یا توعدیه بود این خلاصه احتمال اول مروم شیخ احتمال درونی هم که مروم شیخ خودشون دادن و قبول فرمودن و تحقیق فرمودن حق با قاضیه ایشون می بر اساس سهه تنصف می یعنی به عبارت مخرا قاضی حرفش مطابقه است با اساس سه و اون کسی که پول داده ادعا میکنه فاسد بوده حق با ایشونه اون کسی که میگه فاسد بوده با بیانه بیاره پس کردین این رو این معیاد که هر کسی که قولش مطابق اصله این منکه هر کسی که قولش مخالف اصله مدری. توضیحاتی راجعه به باب قضا بود اون توضیحات رو داریم دو مرتبه این روز انشاءالله اضافه بر همون توضیحات یه تطبیقاتی رو هم انجام بدیم که اینا خیلی مهمه در باب قضا و خرق الاده مهمه نگاه نکنید به ظاهر بحثی که من اینجا مستم میکنم و توضیحاً ارز کردم ادهی از روح باب قضا و اختلاف بین افراد در روایات ما آمده که نسبت به هج در اصن کتاب درن خیلی کمه. اونی که در روایات هم بیشتر این قسمت اختلاف در فقه شیعه اساسا کتاب مخصوص شیخ توصیه از قرن هفتم وارد شده و اون خیلی هم زیاده. اند در کتاب مخصوص شیخ توصی خود اختلاف خیلی زیاده. خیلی از خروه مهمش رو بعدها سه در آورده. و با کم و زیادی مرب علامه خدریجان دیگه در کتب اصحاب ما با تغییراتی جا پیدا کرد. اما سرم این بود چون اهل سنت حکومت و در سااح قذای و همشی مربوط به آنها بود خیلی از مسائلی که در دستگاه قضایی مطرح شده روز رفت دامن سر. از همون قرن دوم دو مثلا که برمهمهارا قرنون دوم قرن, دو قرن ف هاست قرن اول و دوم دو قرن ف هاست از همون قرن دوم دو ی شاش شد. خیلی از خروج، خیلی از تفریعات و یک توضیح تاریخی به هر شدن چون عمر خودش با تفری مخالفت بود. نوشتن اهل سنت که من بعدا وقتش میشم آیونی که که نگاه بفرما جد 6 الحریر از سوال امالمیه که عنوان داریشان که بعضی افراد من از مثلا عمر سوال میکنه اگر اینجور باشه حکمش چی عمر گفت واقعی شده میگفتن نه واقع فرض میکنه فرض عمر حتی یا آقای یک شللا گمیده شللا اشیم بالا ولی خوب کدوم کدوم و سوال ندارم اگر مطلبی گونه که دو میفرمین بفرست نه لذا در بین اهل سنت من نمیخوام از این بحث بیشنه دارن اهل سنت خودش این بحث داره یک دیگر بعد از امّا همین سیاست دار خب طبعا این دین رو خیلی جامعه میکنه دیگه اصلا نموده دین و نموم به فرق به تقلید از اواخر قرن نه قبل دی یا اهل سنت این کار رو هم کنار گذاشته. خودشون اولین شخصی رو که خیلی تفسیر کرده در کتب اهل سنت ابو حنیفه می‌دونن به کسی که تقریر بازدید بشه فکر تقریر بازدید گویا میان چه خط دیری گویا میان که تخمینی اصطلاحات مختلفی دار مراد این تقریعاته اولین کسی که تقریعات رو پیشون آورد ابو حنیفه انصافا هم تقریرات زیادی داره اما خب چیزی از نامرغوثه عرض کردم چند بار سالغا اینو توضیح دادن در کتاب تشریح موارد نامرغوثه میگه رفتن پیش ابو حنیفه اینقدر جلوش کتاب بود که بین من او حال بود ابو کتاب بود. گفت تمامی کتابا در تقریرات طلاق نمیشد دیدید البته ولی چون مثلا تقریر فرض کرده تقریرات نامرغوثی از از مطلب رو من چند بار باطل اولین کسی که دامنه تفریع در شعر اسلامی باز کرد امام باقر هست ایشون باقر همو لنهو بقره العلم بقره یعنی باز کردن تفریعات این تفریعات این بقره این یه دروغی سونا در دروردن و ابو حنیفه امام باقر متولد 57 سن دران در مشهد ابو حنیفه 80 تا 83 چون ابو حنیفه در روشنی هم نذاره حالا گفته شده جدش از اون قضایاش قابل قبوله گفت ریاست مشابود چند دوران جای مختلف نشاد بوده شده پدر زاهره مسلمان شده جزشم که مسلمان نبود و هر حال اصلا زمان امام باقر قابل حساب نبوده در بحث نبوده اگر باشه با امام صادق امام صادق بین 80 تا 83 به ناز بشه عمرن هم عمر امام صادقه وفاتشون هم اختلافیه گفته تو دو سال بعد از امام صادق وفاتشه 150 امام صادق بعد مشهور تر اصلامت حالا من بازین بحث میم تقییعات نامرگوط هم درسه اهل شدن خیلی زیاده ئول در این کلمات ما دروهنی به بخوام آذرس شدن زیاد میخوام شما معوط موارد کنمم. به هر حال یه نقداری زیادی 3 کریه ما چون من از کردم تا دو سال و زمان ش بر چهقدر شش به سروی جون ام جور تویدی حالا داشت اینجا نیست. خوبه های ما اون تفریعات اختلافی رو تا اونجا آردن که در محصوصه سعی می از متون روایات خارج نشه. شهر در محصود از متون روایات خارج شد و از تفریعات آمنه گرفت تفریعات آمنه رو گرفت لیکن جواب شیعه مثل کسی الان مثلا منشور سازوان نلل رو بگیره این با اصول اسلامی حاشه بزن با اصول اسلامی تفریقش بکنه مثلا یه اینجا با اصول ما ن این کاری که برخورده در مفهوم فردا این بود و کار بزرگی است. مثلا کاریه کار بسیار بزرگیه، کار بسیار خوبیه. این کار مقارنه و تطبیق در زمان ماهانه بی خوبه. مثلا الان که رفتم کنونشنایی به رو ملی هست، ما این رو بگیریم، زیرش نظر فرهنگی ایران بنویسیم. این اکتشاف اسلامی ما ادوگاه آوده و در احتمالش آن هم آیاسیس مایه است. در درد در من باور شنو حاشیه داره فكره شیعه در حاشیه خوده کد خود این مقارنته که خوبیه مثلا فكره روشنیه نه به نظر ما شیخ رضوان ما تعالی خیلی موفق نشد ولی تفیئاتش به نظر ما رو اصول شیعه خیلی روشن نمیاد البته یا گرفتاری علمی شیخ زیاد بوده، کارهای زیاد بوده یه مقداری گیر داره به نظر ما خیلی روشن نمیاد این اجمال ده یه مقدار از این تفیئات هم اصلا بعدها رسیده. این تفریع این سفری یعنی هم که ایشون فرمودن بنده فیلن نشد اونقدر مطالعه کنیدن به این شیخ کجا احتمال میدم شیخ از بعضی از خطب خطی گرفته فعلا مسترشه نمیدونم کجاست علاقه فر اول این بود دوران ام بین هبه صحیحه به هبه فاسده خود شیخ یه حق با هبه صحیحه هست یعنی با قاضیه اون منکره زمینه کرد از سالس و سهره. اگر اصل سحر حرف قاضی درست مطابق قاعده اون آقایی که میگه اینه به قاضی نشه باعث ایقامه بهینه بود. این اصل کلام شیخ بود دیروز متعرضه کلمات مرحوم محقق ایروانی شدی که اکثر این کلمات در کتاب استاد داره نکات لطیفی داره در هم به معنای حقیقی نمیخوره من به مناسبت بودم توضیح بدم چون ممکنه این مطالب به نزولی دیگه جایی شهر داده نشه که کاملا روشن بشه بله ولی ازا بگیه حالا من چون خود من بعد توضیحی عرض می کنم خیلن هدفم خواندن کلمات مرحوم محطاق بیرگانی سه عرض کردم چیزا به هشتاد درسته این کلمات در نسبال فقه هم آمده لیکن این یه زیادی داره که در مثال فقاهه نیست لذا من گفتم خود کتابی روانی رو بخونیم مقوم استاد آی همه همین حرفای ایشان دو بود ایشان افتداعا سرمودم قاعده زمان بعد قاعده زمان رو اشار کنم به عموم علالیت بعد سرمان و یعود دوه. قاعده زمان که بگیم حق با اون طرف مقابل نقاضی مقتضای زمان هست و Yeah. درست هر دو لكن بعد یاد مال غیر باشه و که فی مقام اول الكلام علل المال مالو کما یا هل قابج اون میگه به بدن بس صحیح نمونن الا ان یغم الهاذا مگر زمینه بکنیم یعنی عموم علل ید رو بیاریم زمینه استصحاب ادب حبه صحیحه الا ان به اصطلاح اطلااتات استص و عدم سبب به اعنی اهنی از هفت سریعه. من توضعح دارمم امروز دومه میخوام میخوام اننسجان بشه. این مطعاارت بین علم ها یه هم که اگر بخوام یک عممون بکنن با تم به ذ استصاب تماسکن ثال معروبی از کردنشییننی تا چند بار تکرار شده مثلا اگر روایت داریدتجاریم از الا انتکون امرهتن من قرش حالا خانمی هست شک داریم قرشی هست و نه اینجا بعض همستا کدن به عموم اینه بحث ریشگار و است، بحث بسیار معروفیست و می بشیده همستا به عموم به عموم امرهت و ترزن الا خمسی نیستن الا انتکون امرهتن من قرش مگر قرشی باشه که این مثلا تا وقت اینجا شک میکنیم پس یک عموم المرع ازتر از در از, از اون برم شک میکنیم که این خانم نه از سالات عدم غارشی هسته نه این مثل همینه این, این اون نه خالفه الا انیوزن برای که روشن تر بشه پس به عموم علالیت داریم علالیت ما اخردن تو شاعددی هم وقت اینجا شک داریم که هده صحیحه از یا نه الاسلا عدم کنهاه بسن صح مثل از عدم و کنها با این اصید با وجدان حاضی امرأتون وحی غیر قراشی هستر الاص فا تشمول حل عموم فا تر از زن الاخمسی نزنه امرأتون غیر امرأ بودنش به وجدانه غیر قراشیه چا به تعبار این اصطلاح نیسته البته این الانم چون می‌خوام بعد بگم حالا برای همینم خوندم این همون بحث معروف استصحاب عدم عزلی لزو الذ ان یذم استصحاب عدم سر ناقل این مبنیز بر استصحاب عدم عزلی مراد از استصحاب عدم عزلی ما بخواین اصل رو جاری بکنیم در یک چیزی که از اصل وجود خبر نداریم چون من توضیح دادم اطول عدم یا اصل اطول ادم یه اصل اغلایی او دقیق کنی به توضیح بدن اینجا این اصل اغلایی در حد ادم به معنای ادم ایل نه ادم واقع مثلا زید ازدوار شده نیم دویم بچه دار یا نه میگید ما کنیم دویم بچه داره اصل ادم بچه هست اصل ادم بچه نیم نقدار حیم من اون که در واقع هم ده بچه بسرده شده حسارت عدم نه به معنای ادم واقع اشتباه نشه به معنای ادم تو مقامه ایل یه اصل اغلایی نه هست اصل اغلایی این نمل این اصل اغلایی جاری جاری میشه که این ادم قبل از وجود یعنی وجود آرف بدونیم. بدونی مثلا فرسوی بچه که اول به دنیا آمده فرسوی مثلا فرمی نبوده یا مثلا این بچه تا سن پونزه سالی تکلیف نداشه حالا نمیدونیم پونزه سالش شده یا نه ها بکنیم عدم تکلیف رو این میشه چرا چون عدمی بوده وجود بوده اما اگر پس که این خانومی رو شک کردیم که آیا این قرشیس یا نه این از اصل منهین الوجود اما قرشیتون و اما غیر قرشیه از هین وجودش هم داده لذا ما عدمی رو تصور نه رو کنیم که استثاب بکن چون اگر انعقاد نه این عباد نه اینو جهان وقتی دنیا ما همون انعقاد لطن شد اگر از عبد قریشی بود قریشی بود عبد قریشی نبود ریشل قریشی اشکال معروف استفاد اعلم عزلی هم همین هم این تقریبا خیلی اورجی گفته شرحی داره استفاد اعلم عزلی چه به دو مرحله یک معنی تو این گفتن توجیه بیشتری دارید و شرح بیشتری زنده جا می‌زنید در هر حال اینا اشکالشون اینه که این استصحاب عدم کونه ها قرشییتا این مشکل رو داره. لذا شما نمیجوش اینجا همینطوره. عیناً اینجا همینطوره. این من چون یه روزا گفتم دیگه در ذهنه نبود. می‌خواید در آخر بگید. حالا امروز اول گفتید استصحاب عدم سبب ناقل استصحاب عدم ازلی. چون این استصحاب به این معنا که از لحظه‌ای که واقع شد نمی‌دونیم صحیح یا بازده نه اینکه اول صحیح بود برفاسد شد خب این رو از هین وجودش میدونی مثلا با مثال شخصی از مقابل اونه تشخیصیم پس نمیبره نه هست تشخیص از این مرز که نظر یا زن که لای اجوز نظر خب این ها آمدن گفتن استثاب عدم کونه ها امره هست خب این ها خب این نیمیشی داری داشت چون این از انقاد اقاد یا زن بود یا مر این استصحاب عدم ها امرائه به دردی عادت شما شده دیگه هست اون اثر نداره یک بحث است سوال میکنی رجول عثرمه عدم کونه, عدم کونه, عدم کونه داره اون میگینه یکی داره یکیش نداره پس بنابراین اینجا مبنی است بر استصحاب عدم ازلی این رو تازه گفتم روز اضافه کردم مثلا مخواستن... وقت نشد که این توضیح رو عرض بکنن وقت مرموم استاد هم اینجاری این رو قبول شدن استثاب عدم سر ناغل قبول شدن این چرا؟ چون مرموم استثاب استاد وقابن للخدم ها قائل هستند به استثاب عدم عزلی الان مشکول مثل مرموم شیخ و دیگر و مرموم نایمی خود این حقیقت ها رو ترسی استثاب عدم عزلی جایی نمیدی نه به نهو به استثلاح استسحاب و نه به اصل عدم چون قدرت احتمال زمینه نه استصحاب ش می اساس ال عدم توضیحش این تو این الا ان یوجد مع عدم سبب ناغبر ب یعنی علی هر تا ولی یارضو و عدم یا و خاصشون اثر میده که خیلی بله ودا که یک سعبو باز ایشان اشکال میکنن انه اصالت عدم سب ناقل درسته این استضحابه من میشه مرموم آیی روانی که من به اصولیشون من ندارم من میشه مرموم آیی روانی مثل شاگرشون آی خوبی غالی به استضحابه عدم هر هستن ایشون میفهمن اصالت عدم سب ناغل محکومه اما برابر مشهوری که الان علماءی ما دارن محقق دیگه اصول اصلا اصالت عدم جاری نمیشه. استثابه عدم عظمی جاری نمیشه اینکه محکومه ایشون محکوم میدونم من دیروز انواع حکومت رو یک توضیح احس کردم که اصلا بسیار مبحث دقیق و لطیفیست یکی از بحث حکومت اینه که اگر دو اصل داشته باشید یکی احسی در مورد دیگری باشه به حیثی که اگر بخواییم به اون عمل بکنیم کم برش مورد بمونه ناظر اون اصلی که بیشتر میمونه عمل میکنیم. این مبنایی شده برای آیه مثلا ما استصحاب داریم قاعده تجاوز هم داریم خب اگر انسان در حالت سجع شکل در رکوع بکنه استصحاب علی بکنه جایی میشه لكن اگر استصحاب را بکچاری چون قاعده تجاوز کوچی جاری کنه جاری چون شما هر جا این قاعده تجاوز جاری کنه استصحاب است لذا این یک قاعده را این راه معلوم آیه به صد ایرانانه اینکه هم گفتن این راه رو گرفتن برای حکومت نتیجهش من دیروز قوضی هر سر هم. یه خیلی نمی خیمارد بحثی اصولی کنیم شما رو خیلی نمی از کردم یه بحثی الان بین و علما هست از زمان شیخ بیرکره هست پرده شما از یه زمان, زمان در حوضای ما رسمی کرد شده چه نسبتی زین لاتنگذری یعنی یهنه به شد با بین قاعده تجاوز چه نسبتی است؟ گفته شده گفته شده به اصطلاح، حکومت مرهم استاد و شیخ ظاهر حکومت این سه مرهم آیی حکومت گفته شده تخریب خود این حقیقت است با جلسات که هر دویی گفتند روز اشاره کردم پیش شده جلسه جدیدیش می‌دونم که نهلو لغو نکردی آقای دیگر دسته بروید اونا نکته رو این می‌دونن کسانی که والی حکومت هن از فت تخریب های دیگر داره من نمی‌خوام اونا باز بحث استدیویی جلوشند که اون دست هست الان بیدیم بیدیم. یک نقطش اینه اگر ما بخواهیم در مورد قاعده تجاوز به استثاب عمل بکنیم برای مورد تجاوز یا نمیمانی یا فیلی شن پس چطور نشکار جل قاعده تجاوز از این میفهمیم که شاره قاعده تجاوز مقدم کرده بر قاعده استثاب یعنی که شمای استثاب عظم رو کو نمیدیم معنام رو و پرسند یه راه فهم غرفی یه راه فهم غرفی دیگه نه اصلا این ناظره به اونه حالا من دیگه بارد اون بحثشم چه اون میشه و خسته می‌کنه. ایشون ایتون از این محکومون به اصل آخر اعنی اصالت از خیلی فله به فهن, فهن اصالت از سهر به سبب ناظر مقدمان علا کل اصل موضوعی امکان بیمورده ها لوجود اصول موضوعیت قاضیت به فساد اگر اصل موضوعی دیگر, دیگر فساد این اساطسه برای مقدم مقدمه بله لوجود اصول موضوعیت قاضیت به فساد مورد موردها غالبا فلولم تقدم علیها اگر اساطسه مقدمه بله شو لغا لغا میشه بله هم یه قلعه ها بود بعد اشکال دیگر این مرموم آقای ایروانی ترمونن که بیروز توزیل دادیم یشون خودشون توزیه ندارن. یکی توزیه از که اصلا از دو تاست یکی فیفل نه، یکی فیفل زن. اصلا از سهی نه، یکی قاضی است جوابش. مفاد فیفل نه، شما صهیه است یعنی اعمل شما تمام ادعاها و شرایطه. مثل شکنجه لقح انجام دادن نه؟ بیشتر نکن در که سجده رد بشه از انجام یعنی نماز شما تام اما اساس صحیح نیست فی که اساس نمیگه عمل صحیحه میگه طرف مرتکب در حرام نشده این ای که هر آیه رو میگه الا ان نشان فی لا سوشه تو کومره هدیه بهتن مجانیتن قاتع به زمان اثبات نمیکنه این هدیه مجانی بوده هدیه صحیحی بوده اینو اثبات نمیکنه اثبات نمیکنه بله ولذا و نظام و معالم تو تسویر اگه اثبات نکنه کان عموم و علیت به زمینه حسابت عدم عنوان مخصص از عدم ها عنوان مخصص امنی پسیف مال که علا مالیهی مجانه این حجت در زمان میشه یعنی ما عموم علیت رو میاریم با استصحاب عدم حده سریعه نزیم حکم زمان بودم و یوم چه المنافشت و خیل اصل ملکور این قسمت در کلمات آیخوی نیست به انهو لا یعینا حال الید الخارجیه و انها یدن علا مال غیر و مالن یسود کیف یسود و تمسک به عموم علیت الذي موضوع و علیتو علا مال غیر وقتی تمسک به این عام در اینجا نمیشه این توضیح مطلب ایشان من کلیم از عرض ایشان در عقیقت در زیر بحثشون رفتن از دیگه مید با اون که آیا میشه به عموم آن در شبهات مثلاقیه مخصص تمسر کرد یا نه اینه بحثی سیار وطیفه در کلمات قدمه که اصولی های سنی که شیعه این بحث آمده و قالبا هم میگن میشه تمسر کرد در کلمات اصولی نمو شیعه ما آمده با تصدیل بیشتری که حالا من اشاره اجمالی میکنم بحثش در محل خودش اون مثال معروف اگر گفت من باب مثال اگر گفت اکرم کل آدم بعد گفت لا اکرم فصالح العلماء مخصصم آمد زی مسلم عالم خوب دقت کنید لکن یک عملی از او صادر شده میگویند خاصه شد یا نه خاصه هست مثلا قیمت کرد یک کسی رو قیمت شخصی رو انجام بده نمیدونیم آیا از غیبت حرامه تا فاسب میشه یا این از موارد استثناء قیبته پس این فاسب نیست آدلیش هم عادل بود نمیدونیم الان یا اصلا حالش خبا استثاب میخواستانیم حالش ندونیم استثاب نداشت چه خواهدیم؟ حکمشی نسبت قدمای علمای ما و اهل سنت داده شده که اینجا مانعی نیست در رجوع به عموم چه اشتال داره هر کل میکنه در عالم عالم کنست پس عموم میگه فاسق بوده نشم که احراز نیست شبهه مصداقی مخصصه پس لاسوکه رو نمیگیدی پس یه جبهه که باشه ما اگر شبهه مصداقی مخصص باشه به آم مراجعه میکنیم همین دنسه کیو مسئله قراشیان ها ها المرأتو ترذن الى 50 سنه الا ان تكون امراه من قریش این زن خوب یعنی المرأتو ترذن بخاطر چه جایی که خب یعنی سرمود الا ان تكون من قریش بکنید مشکوی که از سایا این زن قراشی هستنم برنوی با امومه ها هل من از و بخمسیتن پس از این مثال نکتهی ای مخواستم بگم دیرودم بره همین شهر مرزن. روشن شد این دو تا بند سن خیلی با همدیگر نزدی کن تأثیر دادم در اینجا البته یکی مسئله استثاب عدم عزلی یکی رجوع و به شماعات مخصص مخصصاقیه مخصصه یعنی ممکن است یک خقیهی قائل بشه که ما به عموم هم برمگردیم لیکن یک خقیه بگم برگرده اما دو زاویه نظر یکی از این زاویه که برمید به عموم هم چون شبهه مثل ظاویه <تصفح> <تصفح> یکی از این زاویه نظر که برمید به عموم هم چون عدم ازلی جانی میشه اصطورت عدم ازلی جانی میشه چون زن که هست الاسوا عدم که ها قرشیت هست. با اثار را تا عدم خورشی بیدیم این ترزن با خمسی میسنم لذا خوب دقیقه فرمون در ما نهناتی هم همینطوره من دیگه را نمیخم باید باشم توی قربه همون ادهی از سروع همینطوره این خیلی لطیقه به اینجا، این مطلب رو در ذهنیت خودشون روچند بکنن خیلی از سروع هست که اینها نتیجه گیریش روجوع به آمه یا چون شبهات نصلاقیه مخصصه یا چون اصل عدم عزلی جاری میشه در ادهه از نوارد مرحوم استاد در تقریباتشون بارد شد یه نمیخوامانا این دوارد بشن مرحوم استاد در این فرو نظر دارن که برمیگردیم با آم چون اشون عدم عزلی جاری میگن آقای خوی اشتباه نشد لکن آقای خوی استثابه عدم عزلی جاری نمیگنن این دوستا با هم اشتباه نشد نتیجه گیری نمی کنم، اما ایشون از راه است سالاد مرزی، شما کوی سالاد مرزی جویدن، اما در شک در شواهد نصیبی مخصوص، ایشون جاری نیست، با آن رجو نمی کنم، خلافنده خود ما، اما مردم سریعی از دی به عکتی نشان داد که اینشون در سالریجشون باید بود، نمونه که چهارش شده تا اینشون ایشون نیستند مردم سریعی است مثل من، نه اینطور نیست، مردم سریعی در شوابهات مسلاوی مخصص به آن رجوع می کند تا بیشتر آن شود. خود آستش فاجوده تجلیشان نمیشه تغییر رجوع نمی کند، نه این اشتباهه. سید رضوی رجوع نمی کنه داره میکنه. سید میکنه می ولی من نمیخوام خوام از سفرایش، چون که خاص آن شد. سید رضوی تفسیری میکنه کند، رجوع در آن در شوابه مسلاوی مخترض. تفسیر در خب باید می کند. هست، شد دو تا بخش داریم، دو تا بخش اصولی سه آن در اصول ما همینه. قدم ما میگفتن رجوع میشه چرا بوده خب ها دیگه ثابت هم که نیست خورشی باش خب حالا نرسد امره هم کم سیستم خب بیدم سرده هم کم یک استثاها برده مرزلی دو در شبهات مصداقی مخصص نه شبهات مصداقی آم به آم میشه مراجعه اتن. چون آم یک قاعده آم نیست دیگه این برشی گفت که همچه هزار... شکلی برود این یکی سوال اینه خوب دفترک بکنید آیا این شک رو با رجوع به آم میتونیم برداریم یا نه؟ سوال آلم آلمه نمیدونیم فاصله هست یا آیا آیا اصالت العموم یعنی اکرم کل آلم اینجا هم میگیری یا نه؟ وقت توضیح هم کسی من از اون ما با استثاب عدم یعنی با آتناستو که با آم ممکن است به ذهن یادگانی دو تا مطلب رو اثبات میکنیم نه یکی این یعنی دو جور میشه پرس کرد خوب دقیق کنیم یه دفعه میخوایم با آم تمثب بکنیم بیام رو حالش رو بکنیم مثلا اینجور بگیم بگیم آقا این حسابه اون که میگه اتم کل آلم که آلم که آلمه پس یه جب چون یه جب اکرامو پس خاصه هم نیست چون گفت لاتو کنم فساقل یعنی ما اومدیم با آن حال موضوع رو تشریح بخوایم بدیم دو ما نمیخوایم بگیم که فاسق هست یا نه تو میثی نمیخوایم بگیم اکرام داره یا نه پیدا دیدا تا میشه یه لحظه با روش و ابهام میخوایم حکم شورا این کنیم کار به موضوع نداریم یه مثال اورقی دیگه بزنم که یک کلی زینتی مثال ها خارج بشه در زیارت مبارکی آشورا داره اللهم بلعن بنی اومیت قاطبتن اگه امومی دیگه اینجا بحث نداره خوشن؟ به حکم اهل مؤمن هم ملعون نیست حالا موقع از بنی اومیت باید جا بنی هاشل باشد پس اللهم بلعن بنی اومیت قاطبتن شامل فردی که از بنی اومیت اومبی و نسل هست اما مؤمن شامل اون نمیشه نمیشه حالا چک میکنیم عمر بن عبداللہ عزیز مثلا تیم له خوب کرده آیا این مؤمن هست یا نه آیا لعان داره یا نه ببینید بگیم اللهم الئن و امیه شامل عمر ن عبداللہ عزیز میشه اینو تو منعی کرد پس لعن اگر شامل او شد مؤمن هم نیست چون مؤمن نمیشه ملعون بشه پس ما با این استدلال اثبات بکنیم ولو کار خوب از او سازش شده با قول مرمون سید رزیست در رسای امرو ام نرزیست سی سال فاصله داره امرو ام نرزیست خیلی عجیبه بعد از سی سال یک قصیدهی در مرسی امرو ام نرزیست سرکه این شک کردیم در این که آدم خوبی سیابن به اللهم الانبنی بنی امیه و چند ایشان مؤمن نیست دو بگیم نه آن نیمخواهم بگیم مؤمن نیست کار نداریم اینو لعنش جایزه ملعون هست اون لعن او رو میگیره پس ما با آن دو کار میتونیم بکنیم یک منبع از نمیشه یک خوب دقت بکنید تشخیص الموضوع دو سرایان الحكمه لع یک دفعه شما با حکم العلماء با شخصی که عالم هست مشکوک کل فقه میگید اکرامل علما شاملش میشه درست؟ لا توکرامل فستاغل فصاق علما بیم معلوم شما شما بده میساقیشه پس این آقا یکیم اکرامو از اون برم لایجوزو اکرامو الفاسق فاهوه لیسه به فاسق فاهوه مؤمنون فاهوه لیسه به فاسق آلمون لیسه به فاسق این یک را دو, دو دو ما کار نداره اونیشو فاسق هست یا نه ما میگیم اکرامل علما شاملش میشه شما هفته اون مرحوهایی روانی ظاهر عبارتش میخواد این به اصطلاح رجوع بکنه برای ازواج بیان موضوع کاروش هم حالت درم ما یا شند باید ارز کردیم آم قضیه یکون کلیه وزعت در رفع به بها این معنی آم اما اون شکی که با آم برداشته میشه در فرق اصول لحظی که از آس رومون از آس رومون اصول لفظی اثبات موضوع نمی کنه کلند یعنی اصول لفظی نیاد به شما بگید این آله قاسد هست یا نه عمر از نرود لفظی مؤمن هست اصول لفظت هم این چیکاری نمی اون اصول مهم... حملی می کنن مثلا اگر گفت که اکران علمان شک کردیم رمال هم آلم هست بگیم به اکران علمان اکرامش واضی به پس آلم این کار اصول لفظی نیست. ما اصول لمزی نبودیم یا تشکیس موضوع بده بگیم لفظ آلم در کار حدیش پس شامل رنبال هم میشه پس رنبال هم آلم نه اول باید احراز بشه آلم تا لفظ شامل نیست اصول لمزی کارشون احراز موضوع نیست با الله ام من بنی اومنیت قاتلات هم احراز نمیشه ترد که اومن عبدالعزی مؤمن نیست اصول لمزی همیشه ناظر به حکمت هست که این یعنی وقتی گفت اکتمال علماء از ساعتل این کارو میکنه نمیدونید آلم فاسق رو اکرام بکن یا نه آلم جوان رو اکرام بکنید آلم آلم جبانه جوانه علماء یه همه رو اکرام بکن اکتمال علماء بعد احراز آلمیت میگه همه رو اکرام بکن مباشر شد پس شما اینجا با اصول با اصول به اصطلاح مثل اتارتل اموم نمیتونید اثبات حالیت بکنید اگلی ما آخر است این عموم ما قاعده یک گفته هر کسی که گرفت زامنه خصوص ید مجانی از طرف مالک زمان نداری این خاص ید مجانی از طرف مالک این خواست مانه نفی مشکوک قاضی میگه ید مجانی از طرف مالکه داخل میگه نه ید مجانی از طرف مالکه آیا میشه به عموم عربیت مراجعه تب یا نه البته بین فرانسفی کوچید این عموم ما به جای اطلا آم چرا چه در بارات اهل در چه شیه چرا ما در عموم موردات اصلاح لظ به اون نداری اطلا داریم در فراننتزی بسته. این در عموم... اینجا باشد شد مثال یه عام داریم ادریت یه مخصص داریم یه مجانی تصیف مجانی زمان نمیاره. یک مورد شک داریم. دعاقه میگه من که پول دادم این چیز م... م... بوده رشوه بوده که زمان میگم خود تازیگن ها این هدیه سریع به من داده این زمان نمیاد پس این یک مشکوک است که آیا جد خاص هست یا نه مشکوک است در شبهه به نهر شبهه مثلاقی مخصص و اگر بخوایم برگردیم به عموم علاویت برای چی برگردیم اصلاف بکنیم که این یک با عموم علاویت یاد مجانی نیست اینو نمیشه اثبات کرد اما بگیم اثبات بکنیم زامنه میخواد یاد مجانی باشه یا نباشه فرق به بل... بنا بالا همو اینجوری اختلافی است مثلا نکاله پاسه مشهور قدماشه گفته باشن میشه وجو کرد عالم عالم فاطمهتون که ایراد نشه تو خلاصه ارزش آمل دیگه نمیشه الان مشهور علمای مسعود نایمیه خدا بخیر اینا قادم میشه. یکی نقطه هم دارم این نقطه شو منا به شما. اگر تحصیلش اون نقطه این از خونه شاملش میشه. یعنی اکمال علمان شامل این آلم میشه که مشکل کل نه نه شاملش میشه. لیکن یعنی آم حجت مشکل نه عام آم, آم لحظی. اکمال کل عالم حجت. این آم. بعد گفتیم دار صبح خفصاق علمان. میگن بعد از پیدا میشه. یعنی اکرم کل عالم غیر فاسه. می‌فهمید؟ این که الان پس قسم مشکوکه شبهه مثلاویه عام حجت نه عام مرلن. عام بعد از تخصیص، نه عام قبل از تخصیص. پس شبهه مثلاویه مخصص مرجعش به شبهه مثلاویه عام حجت. و الان بنای آقایون بر این مطلبه البته نیست مرحوم آقای آسفانی بکنی مبانی کن فرمو کنم نتیجه این موافق شدن یون شرح خاص خودش دارد پس این مطلبی ای رو هم که مرحوم آقای هیروانی در آخر مطلب فرمودن میخوان به آم مراجعه کنن لذا فرمودن ولیون که من مناقشت رو اصل برکوب و انهو لا یا نو بله یه در خارجیه و انه ها یه این با از شنگیه انه و که نور مناقشتو هده لزمان لما لمتوستف این برگه به زمیمت عصالت عدم عنوان مخصص همین عصالت عدم عنوان مخصص رو اینجا مناسب نبود قبلا گفته بودن اعنی تشریف المالک الان مالی همت جانم خود جفتن الازدما این تقریبی که من گفتم بایشون که می داره ولی این, راه این, این راهی که ما رفتیم بهتر از این تعدیلی چیشون چون اون باز دومتن به همون اصل عدم هزهی نه و اون بر این راهی که ر به یونکر منابعش بر اساسی مطلب اندولایواینها حال خارجی و اندها لیاد و علامات لیاد و مالن یست کهی به همه علیا لیاد آن لذی موضوعه لیاد علامات این آخریشی مسئله است آخریش همی نوشتی که رجوع به همه علیا لیاد چون در شبهات مستقیم مخصص خصوصی به آن رجوع کرد این مناقشات ایشان و هر وقت الله تعالی ما خودمون لابه اصل مسئله و سواله مسئله در مطلبی که